حکایت یکی را از بزرگان بادی مخالف در شکم پیچیدن گرفت و طاقت زبط آن نداشت و بی اختیار از او صادر شد گفت ای دوستان مرا در آن کردم اختیاری نبود و بزهی بر من ننوشتند و راحتی به وجود من رسید شما هم به کرم معذور دارید شکم زندان باد است ای خرت ندارد هیچ عاقل باد در بند، چو بادن در شکم پیچد فروهل، که بادن در شکم بار است بر دل، حریف ترش روی ناسازگار، چو خواهد شدن دست پیشش مدا.